حکایت یکی از ملوک را شنیدم که شبی در اشرت روز کرده بود و در پایان مستی همی گفت ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست که از نیک و بدندیشه و از کس غم نیست. در ویشی به سرما برون خفته بود و گفت ای آنکه به اقبال تو در آدم نیست. گیرم که قمت نیست. غم قم ما هم نیست. ملک را خوش آمد. هزار دینار از روزن برون داشت که دامن به داره در بیش. گفت دامن از کجا آرم که جامع ندارم. ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی آن مزید کرد و پیشش فرستاد. درویش مرا نقد و جنس را به اندک زمان بخورد و پریشان کرد و باز آمد. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل آشق، نه آب در قربا. در حالتی که ملک را پروای او نبود، حال بگفتند، به هم برآمد و روگ از او در هم کشید، و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و خبرت که از هدت و سورت پادشاهان بر هزر باید بودن که غالب همت ایشان به مؤزمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدهام عوام، نکند حرامش بود نعمت پادشاه که انگام فرصت ندارد نگاه مجال سخن تا نبینی ز پیش به بیهود گفتن مبر قدر خیش، گفت این گدای شوخ مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت برانید که خزانه بیت المال لقمه مساکین است، نه تعمه اخوان و شیاطین. ابلهی که روز روشن شمع کافوری نهد، زود بینی کش به شب روغن نباشد در چراغ. یکی از وزرای ناسه گفت، ای خداوند، مسلحتان بینم که چنین کسان را وچه کفاف به تفاریغ مجرا دارند تا در نفقه اصراف نکنند، اما آنچه فرمودی از زجر و منع مناسب حال ارباب همت نیست یکی را به لطف امیدوار گردانیدن و باز به نومیدی خسته کردن به روی خود در تماع باز نتوان کرد چو باز شد به درشتی فراز نتون کرد. کس نبیند که تشنگان حجاز به سر آب شور گردایند، هر کجا چشمی بود شیرین مردم و مرغ و مور گردایند.